چند توضیح توضیح اول اون که من کتاب رو بر اساس نسخه چاپ شده در ایران توسط نشر گام نو خوندم این که این نسخه که من خوندم با نسخه که در خارج از کشور چاپ شده چقدر تفاوت داره رو بی اطلاع هستم توضیح دوم این که کتاب با فصلی آغاز میشه که من به دلایلی ترجیح دادم این فصل رو از ابتدا به انتها منتقل بکنم توضیح سوم این که در این فصل برخی از شخصیت‌هایی که در کتاب حضور دارند با نام‌های دیگری حاضر میشند. من به دلایلی ترجیح دادم که اونها رو با نام‌هایی که در متن کتاب خطاب شدند خطاب کنم و توضیح آخر اینکه به این دلیل که فصل اول رو جا انداخته بودم فراموش کردم که در ابتدا تقدیم نامه کتاب رو هم بخونم پس تقدیم نامه رو هم همین جاها هم خواند. تقدیم به محمد رزا بیگی برای دلسوزاندنش برای هم فکریش و همراهیش با تمام لحظاتم و نیست سپاس قلبیم پیشکش یارانی که برای به پایان رساندن این کتاب مشوقم بودند و همراهیم هم کردند به خصوص همسرم مهدی که اولین خاننده و منتقدم بود و سهم به سزایی در تدوین این کتاب داشت خاطرات موسیقی تا حال شده که از ته دل آرزویی کنید آرزویی که میدانید هیچ وقت عملی نخواهد شد سیگاری آتش میزنم. جمعه است از صبح سر کار بودم اما توانستم عصر به موقع به خانه برسم و کارهای میهمانی شب را راست و ریس کنم قرم سبزی سر بار است و خانه از نور شام آرامشی مطبوع گرفته تا رسیدن مهمان میتوانم با این سیگار و قهوه لحظاتی در خلوت خود فرو روم و خستگی از تن به در کنم جای همیشگی می نشینم روبروی او مثل همیشه خیره نگاهم می کند. از لابلا دود سیگار تکه های از صورتش پیداست کاش به دیدنم بیای. وقتی انقدر کار داری دیگه چه جایی واسه من میمونه؟ تو جز از منی خسته ای روح هم خسته است چه کنم برای روحت به دیدنم بیا صدای زنگ در زودتر از آنچه چه فکر می کردم می آید. در را باز می کنم پوران است هنوز وارد نشده می گوید وای چه بوای خوبی پشت سرش عباس وارد می شود می پرسم شما دوتا کجا هم دیگر دیدین؟ پورا نگران سرش را نزدیک می کند و آهسته میپرسد اشکالی که نداره همراهش آوردم نمی دونستم بهش گفته بودی یا نه با صدای بلند می گویم عباس که احتیاج به دعوت نداره چطوری عباس؟ می بینی که هنوز این نفس میاد با این سختی که تو نفس میکشی آدم هر دفعه نگران دم بعدیه نمیدونی که چقدر خوشحالم که همینم هست با آسم شدیدی که او داشت همه خوشحال بودیم که همین هم بالا میآید هنوز ننشسته کپسول اکسیژن را در میآورد و در دهان خالی می کند. این بوها چیه که میاد؟ آد؟ قرمه سبزیه دوست داری؟ باور نمی کنم کار خودت یا خونه مامانت تاوردی می دانم که شوخی می کند اما قیافه دلخور می گیرم بالاخره بعد یه عمر یاد گرفتم که حرف در دهانم نیمه می ماند. کسی پشت در است در را باز می کنم نیماست. قلبم به تپش میافتد قبل از سلام میپرسد موتور میتونم اینجا بذارم؟ معلومه پروین را پشت سرش می بینم. خودم از نیما خواسته بودم سر راه او را هم بردارد پروین محکم بغلم میکند و میبوسد زرافت شانه و باریکی اندام کوچکش را زیر دستهایم حس میکنم و محکم به خود میفشارم نیما در کناری با حسرت نگاهمان میکند بابا چه خبره مگه چند وقت هم دیگر ندیدید پروین از من جدا شده میگوید مامان برات کلوچه داد کلی هم سلام رسوند پرسید کی به سر میزنی پوران به سمت ما آمد و در حال روبوسی کروچه را گرفت و گفت من آشق اینا چه بوایی میاد قبل از اینکه جواب نیما را بدهم پوران میان حرفم میدود پوی قرم سبزیه میگه خودم درست کردم و به نیما چشمکی میزند و ادامه میدهد البته کوکو سبزیرم فراموش نکرده خون به گونه هایم میدود نمیدانم چه بگویم نفسی کشیده و حرف ناتمام را ادامه میدهم بابا آدم عوض میشه باور کن این کار خودمه زیرچشمی همه نگاهی به هم میاندازند و میکوشند خندشان را نبینم دست مرا خوردند و میدانند که پختن آخرین هنر من است عباس نفس عمیقی میکشد و میگوید هیچ کسی عوض نمیشه تو هم سعی نکن خودتو تغییر بدی به اینام گوش نده هرچی درست کنی خوشمزه است مگه نه نیما نیما خودش را با ای که در دست دارد مشغول کرده است این طور نشان می که حواسش به های ما نیست اما رنگ به رنگ شدن صورتش اون را لو می دهد. پوران به دادش می رسد می گوید این همون مجله این زمان و آن زمانه؟ بده ببینم داستان آخرت آنها هم تو همین چاپ شده بود میخوام واسه شماره بعدیشون واسه شون یه شعر بفرستم عباس میان صحبت میدود فکر نکنم بذارن شماره بعدی در بیاد برای ریختن چای به خانه میروم نیما دنبالم میآید آرام میپرسد کمک میخوای؟ بعد از این همه سال هنوز در کنار او دست و پایم را گم میکنم دلم میخواهد بگویم همینجا بمان نمیدانم چرا خودش را تنها دعوت نمی کنم؟ چرا به او نمی گویم واقعا عجب آدمی هستم حق دارد عباس وقتی میگوید که آدم ها عوض نمی شوند چرا گرفته ای؟ چیزی شده؟ داستانو خوندم کدوم داستان؟ شب تار همون که برادرت محمد رزا بعد از رفتن رفتنتو نوشت ها خوب خوشت اومد؟ همیشه این برق سر رو میدونستم دونستم از اون طرفش خبر نداشتم وقتی خوندمش رفتم تو خونتون تو راه رو تو اتاق دیدم مادرت چطوری بعد از رفتن تو همه جا دنبالت می گرده. دیدم پدرت از بس شیشه پنجره کوچه رو در انتظار برگشت تو پاک کرده چشماش تار شده ناهید و با دامن چیندار قرمزش دیدم که وقتی اسم تو میاد شونه هاش میلرزه باورم نمیشه که بعد از سی سال در خاطری رو برداری و ببینی تازه تازه است اینا خاصیت عشقه دیگه وقتش شده که تو هم داستان تو شروع کنی ماتل چی هستی میتونم شروع کنم اما نمیدونم چطوری تموم کنم نمیخوام تموم بشه نیما دستش را روی دستم گذاشت منم همینطور پروین وارد آشپزخانه می شود دستم را پس می کشم تفلکی هول شده میپرسد یه ظرف واسه کوکوها میخواستم بشخاب را به سویش گرفتم از ذهنم گذشت پروین که همه چیز را میداند پس چرا نگرانم بشخاب را گرفت و از در خارج شد نیما مشغول ریختن چای گفت اما هر داستانی یه پایانی داره پایان قصه تو مرگه چطوری میتونم تو رو بکشم؟ اما این کار بر نمیاد خون سرد آب کتری را روی استکانهای نیمه پر چای ریخت خب نکش نکشم؟ بگم تو چی شدی؟ دست از ریختن کشید و خیره ماند و خاند باور نمی کند دل من مرگ خیش را بگو زنده است بغزم را گورت میدهم چطوری به مادرت بگم زنده است؟ میپرسه پس کجاست میخوام ببینمش نیما ادامه داد تا دوست داریم تا دوست دارمت تا عشق ما به گونه هم ز مهر تا هست در زمان یکی جان دوستدار کی مرگ میتواند نام مرا بروبد از یاد روزگار تو این کتاب به مادرم بده خودش میفهمه کجا این را گفت، سینی چای را برداشت، به اتاق بازگشت و مرا در آشپزخانه تنها گذاشت. گیج و مبهوت سخنان او، خیره به درون خود صدایش را میشنوم. باور نمی کنم که عشق نهان می شود به گور. صدای سیمین از درون اتاق رشته افکارم را پاره می کند. از خود میپرسم کی اومد؟ با شوق دیدارش به اتاق برمیگردم اولین چیزی که می بینم نگاه خستهش است. از او خواسته بودم تا زودتر بیاید میخواستم تا قبل از آمدن دیگران در خلوت درباره نیما با او صحبت کنم. می بخشی رفتم سند ماشین رو بگیرم دیر شد. دلم هر ری پایین ریخت تا کی میخواست دنبال این سند لنتی بدود عباس صدایش میزند به موقع رسیدی بیا فعلا تا وقت هست با ما یه چایی بخور این همه کتاب امروز خریدی؟ عباس با کتاب هایی که از درآورد مشغول است و در جواب سیمین میگوید هجلو دانشگاه باورم نمیشد همه رو با یه سوم قیمت می فروختن. نگاه کن. آنتی دورینگ، جنگ شکر در کوبا، اسیر. پروین میپرسد: اینا رو مگه نخوندی؟ واسه چی دوباره خریدیشون؟ خوندم. اما چند سال پیش دادمشون بین اون. خوبه آدم اینا رو دم دست داشته باشه. پوران چشمکی زده میگوید: مگه نمیدونی عباس کتاب احتکار میکنه. سیمین می دختر دختر جاسیگاری کجاست؟ حواست باشه نفس عباس در نمیاد برو تو حیات روبه پوران اشاره می کنم نگران نباش میریم تو آشپسخونه از ذهنم میگذرد؟ میتوانم با سیمین تنها شوم. پنجره آشپسخانه را باز می کنم سیمین سیگاری آتش میزند و دود آن را تا ته فرو می دهد. در فکر است تا کی میخوای دنبال این سنت بری این دفعه آخره ساعت نه باش قرار گذاشتم بر میگردم شب پیشت میمونم دوباره پوکی زد و به چشمانم خیره شد برای اینکه راضیم کند گفت میتونیم تا صبح بیدار بمونیم و حرف بزنیم نگرانتم منم اما خودت که میدونی نه نمیدانستم چرا یا واقعا مسئله سند ماشین بود یا قولی که به رفقا داده بود یعنی این قول اینقدر مهم بود وقتی به اتاق برگشتیم پوران با حیجان از جریانات دانشگاه تعریف می کرد شوق و توجه کودکانه پروین زبان پوران را باز کرده بود یه قوطی رنگ رو روی پالتوی طرف خالی کردن یا رو باورش نمیشد شد وای بود مات نگاه میکرد بقیه خنده دلشونو گرفته بوده پروین محو تعریف های پوران و من محو چهره زیبا و چشم های معصوم ها او هستم خیلی وقت است با هم ننشسته ایم خیلی چیزها دارم که برایش تعریف کنم پوران موهای بلندش را دورش افشان کرده و همین بر زیبایش افزوده است. عباس با شیفتگی به او می نگرد. حس می کنم اصلا حواسش به تعریف های او نیست. مدت ها بود که پوران را آنقدر سرحال ندیده بودم. حالا که سرحالی یه شعرم برامون بخون. سیمین حالت های پوران را می شناخت. این بهترین فرصت بود که از او بخواهد تا برایمان یکی از شعرهایش را بخواند پوران کمی مکس کرد سر زیرانداخت و چشمها را بست با دستهایش صدایم کرد با چشمهایش نوازشم کرد با کلماتش در آغوشم گرفت در احساس او غرق شده خوابیدم پوران سر بلند نکرد. فکر کنم چشمهایش خیص شده بودند همه می دانستیم شعر را برای مادرش گفته است. نیما رو به رویم نشسته و کتاب های عباس را رو رو می کند. نمیتوانم به چشمهایش نگاه بکنم. مثل دختر بچه ها وقتی با او حرف میزنم دلم میل رزد. نمایش نامه گووش نشنا نوشته جامپول سارت را ورق می زند. حتمی در فکر طرح تاتر بعدی است کاش بخواهد در آن بازی کنم نمیدانم بعد از این همه مدت هنوز از بازیگری چیزی به با یادم مانده باشد اما حداقل بهانه‌ای است تا نزدیکش باشم یعنی میشه ما با هم توی یه نمایشنامه بازی کنیم پوران با ضبط صوت ور می‌رود داریوش می‌خواد قوهمی میذارم رو دوشم رخت هر جنگو میپوشم میارم ماه و تو خونه میگیرم باد و نشونه همه خاک زمین و میشمرم دونه بدونه اگه چشمات بگناره چشمهایم به دنبال چشمهای او میگردد باز هم صدای فشفشه کفصول عباس میآید این صدا از گوشم بیرون نمیرود سیمین ای رفتن می شود با نگرانی نگاهش می کنم نیما بلند شده می گوید من باش میرم، خودم برش می گردونم زود بر می گردیم. نگرانی هم بیشتر می شود چیزی دلم را چنگ میاندازد نه نرید هر دوتون نرید زنگ در و صدا در می آید منتظر کس دیگری نیستم نه در را باز نمیکنم. پروین تو برو کنار جلو نیا پروین قایم کنید پوران بیرون نرو نیما در را باز نکن نه نه در را باز نکن بغض راه گلو را بسته است صدایم به جایی نمی رسد دوباره صدای زنگ در این بار ممتد و بدون وقفه صدای دخترم میآید مامان مامان کجایی درو چرا باز نمی کنی کجا بودم من آنجا نبودم اما آنها آنجا بودند پوران حباس سیمین پروین نیما هر جا که می روم و هر چه می کنم آنها در کنارم هستند به سوی در آهنی سنگین زنگ زده میروم تا بعد از سی و پنج سال آن را باز کنم